بسم الله الرحمن الرحیم دیروز در مورد نصب اسم منصوب خواندیم. در دو قسم آورده بود قسم اولش رو خوندیم امروز رسیدیم قسم دوم القسم الثانی قسم دوم بحث نصب و نسبت النصب الى فعيله و فعيلته نسبت دادن به کلمه‌ای که بر وزن و فعیلہ باشه یعنی موقعی که می‌خوایم از کلمه‌ای که بر وزن یا فعیلہ هست اسم منصوبی درست کنیم منصوب با سین چطوری هست الانفله اولین شو بر وزن فعیلہ آورده مانند حنیفه قبیلا جلیله حقیقت طویلا قویمه حالا میگه موقعی که میخوایم از اینها اسم منصوب درست کنیم اینا رو منصوب اله کنیم یعنی چیزی رو به اینا منصوب کنیم نسبت بدیم یا نسبت به اینا بیاوریم چه حال رخ میده؟ حلیفتو میشه حنفی یا چی شد؟ یا حس شد تو قبلی یا چی شد هم یا هم تا هم یا هم تا از آخر اما در تو دیگه یا حس نشده تا حس میشه دیروز این قایده تا رو کندی ولی یا حس نشده جلیلی حقیقه حقیقی دیگه. حقیقی یا غیر حقیقی این اسم نسبت اسم منصوبه میبینیم که در حقیق جلیلتون و حقیقتون موقعی که اسم منصوب درست کردیم یا حس نشده ولی تا دیگه حصف شده تا کلن حصف میشه در مورد تا اصلا بحثی نداریم این قائده حصف ولی چرا در دو سال اول یا حسب نشد اما در دو سال بعدی یا حسب شده، یا در تویلتون هم یا حسب نشده تویلی قویمتون هم قویمی یا حسب نشده؟ الان در قاعده میگه چرا؟ چون دوتا اولی که یا حسب نشده یعنی جلیلتون و حقیقتون مزاعف هستن دوتا قافتشون هست تون جلیلتون دوتالام هست و طویلتون و قویمتون هم خاطر که در قائده یست 323 میگه تکرار نمیکنیم بریم روی امثله اینها بودن بروازن فعیلتون اما اونایی که بروازن فعیلتون باشند بروازن چی؟ فعیلتون چطوری اسم منصوب درست میشه؟ جوهينة جوهني عبيدة عبدي أميمة عميمية هريرة هريري عيينة ييني نوارة نوي نوري پس نورتون نوری اینها رو الان توضیح میده که تا که هست میشه ولی چه زمان یا هست میشه و چه زمان هست نمیشه بیاید روی قاعده دویست و بیست و اذا نسبه الى, الى اسم علا فعیله زمانی که نسبت داده شود به اسمی که برواقع چه باشد فعیله باشد فان کان مضاعفا او معتل العين اگر مضاعف باشه اون اسمی که بر وزن فعيله هست یا معتل العین باشه اون اسمی که بر وزن فعيله هست مانند جلیله و حقیقه که مضاعفه و مانند طویله و قویمه که موتل العین هست ها میگه حوضبت منه تاول لا فقطه فقط تا از اون هست میشه نه چیزی دیگه خب جلیل اسم منصوش میشه جلیلی حقیقتون هم اسم منصوبش میشه حقیقی. این بود از مضاعف، اما از مطلعن طویله قویمه. توی طوي... و... واف کائنال فیلش هست و در هم در طويله هم در قویمه مطلوله این دیگه حرف دوباره مشوافه دیگه اینال فیل خوب در این هم میبینی میشه تاولی و قویلی یا هست نمیشه یا هست نمیشه پس گفته بود خرید من هو تا اولیه سرگرفت فقط چی هست میشه تا نه چی دیگه و این کانه صحیح هالعین اما اگر صحیح هالعین بود مانند حنیفه و قبیله که نون و باق اینال هستند در این دو کلمه مطل نیستند حرف عله نیستند میگه در این حالت چی میشه؟ خوضی فمعتای یاؤ فعیلتون میگه حس میشه همراه تا یا هم یا حس میشه هم تا و فتح الحرف الثانی و دوم که همون نون هست در حنیفه و با هست در قبیله فقط داده میشه میشه حنفی و قبلی چرا به حنفی ها میگوین یعنی حنفی این اسم منصوبه این یا یا نسبته یعنی منصوب به حنیفه منصوبه به چه؟ بله در حنیفه زمان اسم منصورش کردن یا چی شده؟ حس شده و تا حس شده چرا حس شده؟ چون اینا بر وزن هستند و هم مطللعین نیستند و هم مضاعف نیستند اگر مطللعین می بودند یا مضاعف در اون حالت یا حس نمی شد یا حس نمیشد. اما بریم روی قاعده دویست و بیست حرف دومی در در در منصوب الی ها که حنیفه باشه نون ساکن داره و در اسم منصوب فتحه داده شده ح ن رج دارن فتحه 224 اذا نصب الى اسم علا فعیلته زمانی که منصوب شود به اسمی که بر وزن فعیله است زمانی که بخوایم نسبت بدهیم به اسمی که بر وزن هست یعنی منصوب اله بر وزن باشه منصوب اله بر وزن چی باشه؟ من میخوابی از شما اسم منصوب درست کنیم بله فَإِلْكَانَ مُضَعَفَن اگر منصوب اله مضاعف بود آه؟ مانند امیمه هریره امیمه دوتا میم داره هریره دوتا راه مضاعف, مضاعف هستن خُلِّفَمَ أَتَّاعِي یا... حذفت منه هتاو او... کجا رسیدیم؟ حذفت منه هتاو لیسه غیر فقط تا هست میشه مانند امیمه که میشه امیمی هریره که میشه هریری متوجه شدید؟ فقط تا هست شده یا دیگه هستو نشده یا یه فعیله هستو نشده و این لم یکن اما اگر مضاعف نبود اگر مضاعف نبود او همراه با تا یا هم حس میشه یعنی اگر مطلبود یا حس میشه در زمان که بروازن فعیله باشه مانند جوهنه که میشه جوهنی عویده عویدی او عویینه عویینی یعنی نویره نووری این چارتا این چارتا یا هم هست شده تا هم چرا چون مضاعف نیستن اما در امیمه و هرهره امیمی و هرهری هم یا هست شده چی؟ یا هست نشده فقط تا هست شده چرا؟ چون مضاعف هست خب علتش چه هست؟ زمانی که بروزن فعیله باشه بروزن فعیله باشه در موتل یا هست نمیشه ولی در زمانی که بر وزن فعیله باشه در موتل یا حص میشه مثلا در اویینه که بر وزن فعیله هست یا حس میشه زمانی کسی منصور درست میکنیم میشه اویینی به خاطری این که اگر بر وزن فعیل باشه بحث اعلال رخ میده چون فاول فل در فعیله فتحه داره ها هر فعله ما قبل متحرک اونجا اعلال رخ میده ولی در وزن فعیله اعلال رخ نیده لذا یا میشه ده میشه آره اینو گفته خود کتاب گفته یا را مصرفین بقاء يا یا و عند النسب اذا كانت معتلة الان كما بقيت في فاءه المعطله الان فيقول في, قفتن الان الان في, الان في و او یینی بعضی از یا گفتن اگه زمانی که بر هم باشه یا حسب نمیشه فقط تا هست میشه زمانی که مطلول این باشه علی ای حال ما یاد گرفتیم اگر بر وزن فعله باشه در یک حالت فقط یا هست میشه زمانی که مضاعف نباشه و متعلل این نباشه در اینجا یا هست میشه مانند حنیفه که میشه حنفی اما اگر مضاعف یا متعلل ال باشه دیگه یا حسب نمیشه مانند جلیله که میشه جلیلی حقیقه که میشه حقیقی و زمانی که بر وزن نفوئی باشه در یک حالت یا حس میشه زمانی که مزاحف نباشه چی زمانی که در یک حالت یا حس نمیشه زمانی که مزاحف نباشه زمانی که مزاحف باشه اینجا یا حس نمیشه زمانی که مزاحف باشه یا حس نمیشه اما زمانی که مطلول باشه یا حالت دیگر یا چی میشه؟ خصف میشه این هم از نسبت به زمانی که میخواستیم از اسمی که بر وزن فعیله یا فعیله بود اسم منصوب درست کنیم. یا یا نسبت اضافه کنیم این قواعدش بودند